شما امت کسی هستید که خدا او را برد، نه او رفت، شما امت موسی نیستید، شما امت ابراهیم نیستید، شما امت خاتم انبیایی علیهم آلاف و تحیت و گرچه وارسان همه اونهایی، گرچه همه اونها نورن، گرچه لان و فرق و بین اهد من رسول انا. اما وقتی سخن از مناجات موسای کلیم است خدا میگوید لما جاء موسی میقات ما یعنی موسای کلیم به ملاقات و میقات و مناجات ما آمد اما وقتی سخن از ابراهیم خلیل است میگوید اینی ظاهبون ربی من به سمت خدا میروم لیکن وقتی سخن از خاتم انبیا علیهم آلافت حیت و سناس سبحان اللذی اصراب عبدهی لیلن من المسجد الحرام المسجد الاقسل الذی بارکناه له اون پروردگاری منزه است که بندش را شبانه برای سری و سیر برد فرق بین پیغمبر ما و دیگر پیغمبرن آن است چ اونها به ملاقات حق میروند پیغمبر ما را خدا میبرد محب محبوب را جذب میکند